کتاب افسانه های ایتالیایی نویسنده ایتالو کالوینو مترجم محسن ابراهیم ارائه شده از کانال تلگرامی هزار افسان، به مدیریت محمد جواد بوستانی گوینده فاطمه صادقی داستان پدر که دیده نمیشد. یکی بود، یکی نبود. مادری بود که سه تا دختر داشت. اونو خیلی فقیر بودن. یه روز یکی از دخترها گفت به جای اینکه بمونم اینجا و زجر بکشم میخوام بذارم برم دنبال سرنوشتم. و بعدشم راه افتاد و رفت. رفت و رفت تا رسید به یه قصر. در قصر باز بود با خودش گفت برم تو ببینم اینجا خدمتکار نیاز ندارن رفت توی قصر و سابخونه رو صدا کرد اما صدایی نشنید رفت توی آشپزخونه و دید که یه قابلمه داره میجوشه در قفصه ها رو باز کرد توش پر از نون و برنج و ادویه های مختلف بود با خودش گفت اینجا همه چیز هست منم که گشنمه، پس یه آش خوشمزه برای خودم درست میکنن. داشتین حرفها حرفا رو میزد که چشمش افتاد به دو تا دست که دارن سفره پهن میکنن. دستا یه بشقا پلو گذاشتن روی میز و دختره گفت بخورم و برافاسه به مشغول خوردن شد. پلو رو که خورد دستا براش یه جوجه مرغ آوردن دختر همه شونو خورد. بعدش هم گفت خب دیگه حالم بهتر شد. بلند شد و رفت و قصر خوب بچرخه. رفت و همه ی اتاقای قصر رو گشت. رسید به یه اتاق خواب. با خودش گفت عجب اتاق قشنگی. چه تخت راحتی. حالا میخوابم. و تموم شبو گرفت و تخت خوابید. صبح تا بیدار شد، همون دو تا دست براش یه سینی قهوه آوردن. قهوه رو خورد و دستا سینی ها رو به خودشون بردن بیرون. دخترم لباس پوشید و رفت به تالار بزرگی که یه کمد پر از لباس و شال و دامن داشت. دختر همه که لباس‌های فقیرنشو در آورد و مثل ملکه ها لباس پوشید. اگه دختر قشنگی بود حالا با این لباس های قشنگ زیباتر شده بود. یه آلاچیق اونجا بود. دختر خوشگل ما رفت زیر آلاچیق. پادشاهی که داشت از اونجا رد می چشمش افتاد به دختره. ازش پرسید که چطور میتونم از خاصگاری کنم؟ چون یک دل نه صد دل آشقت شدم. دخترم گفت که نه پدر داره و نه مادر. اما اگه یک بار دیگه از اونجا رد بشه، به پادشاه جواب میده. پادشاهم تعظیم کرد و از اونجا رفت. دختر برگشت به خونه و رفت کنار بخاری دیواری و گفت من بازم اومدم به این قصری که کی رو توش ندیدم. حالا یه پادشاهیه که خیلی خاطر من شده. وقتی برای جواب میاد دوباره اینجا من باید چی بهش بگم؟ یهو از بخاری صدایی شنید که بهش میگفت سرت سلامت دخترم تو زیبایی و زیباتر هم میشی بهش بگو که پدر بزرگ بینوای بیمار و تنهایی داری که خوشحال میشه عروسی کنی به شرط اینکه برای جشن عروسی زیاد منتظرت نذاره حالا برو که زیبایی و زیباتر میشی. و دخترم هر روز قشنگتر و قشنگتر میشد. روز بعد رفت جلوی پنجره به همون موقع پادشاه سر رسید. تا اونو دید ازش پرسید که جوابش چیه؟ دخترم جواب داد که نمیتونه اونو ببره خونه چون که پدر بزرگش مریضه. اما در بزرگش خوشحال میشه که دخترش عروسی کنه به شرط اینکه این کار زودتر انجام بشه در زم همونطور از جلوی پنجره شروع کردن با هم حرفهای آشقانه زدن و پادشاه هم خیلی خوشحال بود از پشت پنجره هشت روز با هم صحبت کردن بعد از هشت روز دختره رفت دوباره کنار بخاری دیواری و گفت پدر بزرگ، هشت روزه که ما با هم راز و نیاز داریم میکنیم. نظر چیه؟ پدر بزرگ جواب داد. خب باهاش عروسی کن. همه اسباب و اساسیه یه خونرم ببر بیرون. سفارشی که بهت میکنم و هیچ وقت فراموش نکن. هیچی نباید اینجا جا بذاری. خوب یادت باشه. دقت کن، باید همه چیزو بری بیرون. و دوباره بهش گفت. حالا برو. زیبایی و زیباتر هم میشی. و دختره دوباره رفت جلوی پنجره تا پادشاه رو ببینه و بهش بگه که جشن عروسی رو راه بندازه. دختر به پادشاه گفت که گاریا و اسبها رو هم باید بیاره تا هرچی که تو قصره با خودشون ببرن بیرون. خلاصه. هشت روز دیگه هم طول کشید تا همه ی وسایل رو بردن بیرون و پادشاه هم به پدرش گفت ببین پدر که این عروس من چه اسباب و اساسی قشنگی داره. حتی ما که پادشاهیم این همه وسایل زیبا نداریم. دختر قصر رو جارو کرده بود. حتی زباله ها هم بیرون ریخته بود. دیگه همه جا خالی شده بود. فقط یه گردنبند طلا مونده بود که میخواست موقع بیرون رفتن از قصر اون رو به گردنش آویزون کنه. اون رو روی میخی که روی دیوار بود، آویز کرده بود تا موقعی رفتم برداره. پادشاه سر رسید با یه کالسیه ی دو اسبه دختر دوباره رفت کنار بخاری و گفت پدر بزرگ من دارم میرم چون شوهرم ماده دنبالم. خیال تخت باشه که همه چیزو برداشتم. همه ی رو هم جارو کردم. پدر بزرگم گفت آفرین دخترم. ازت متشکرم. تو زیبایی و زیباتر از این هم میشی دختره هم که زیباتر از روزهای قبل شده بود سوار کالسکه شد و با پادشاه به راه افتادند وسطای راه بودن که دختر دست به گردنش زد و آه از نهادش بلند شد یهو فریاد زد آخ که بدبخ شدم گردم بند بند و یادم رفت زود باش برگردیم عقب پادشاه گفت ولش کن میدن برات یه قشنگترش شد و کنن. اما دختره به هر قیمتی که بود میخواست برگرده عقب. از کالسکه پیاده شد و رفت به قصر. پادشاه بیرون قصر منتظرش بود. دختره رفت کنار بخاری و گفت پدر بزرگ؟ اونم جواب داد چی میخوای؟ تو رو خدا من رو به گردم بند تلام و جا گذاشتم. همین همینطور که داشت اینا رو برای پدر بزرگش میگفت گردنبند رو از روی میخ دیوار برداشت. صدای از بخاری شنید. برو بیرون از اینجا. برو بیرون. زشت ریشو. به تو این همه سفارش کردن که همه یه چیزا رو باید با خودت ببری و هیچ جا نذاری. برو بیرون. دختره همون موقع که داشت گردنبند رو میداخت گردنش موهای رو زیر انگشتش حس کرد. نگاهی به خودش توی آینه کرد تا روی سینهش ریش درآورده ورده بود وقتی با این شکل و شمایل از پله ها رفت پایین داماد بد جوری جا خورده بود بهش گفت بهت نگفتم بر نگردی مقب حالا چیکار کنم که به پدرم گفتم تو خیلی زیبایی نمیتونم تو رو با خودم ببرم خونه همین نزدیکی ها توی جنگر یه کلبه دارم میبرمت اونجا و اونجا ازت نگهداری میکنم همین کار رو هم کرد دختره رو توی جنگل گذاشت و هر روزم میرفت بهش سر میزد چون خیلی دوستش داشت از هیچ کاری هم براش دریغ نمیکرد جریان همینطور تا مدتی پیش رفت تا اینکه خبر به گوش پادشاه رسید که پسرش آشق یه زن ریشو شده پادشاه پسرش رو خبر کرد و بهش گفت فکر میکنی یه پادشاه میتونه با یه زن ریشو عروسی کنه؟ آبروی روی تاج و تختمون میره یا باید ولش کنی یا من دستور میدم که بکشنش جوان رفت پیش دختر رو بهش گفت گوش کن باید یه موضوعی رو بهت بگم پدرم فهمیده که من یه زن ریشو گرفتم و به هم گفته که اگه ولد نکنم تو رو میکشه بگو باید کجا فرار کنیم. دختر گفت تو باید یه لطفی در حقم با کنیم. برام یه تور سیاه و یه لباس محمل سیاه تهیه کن و من رو ببر پیش پدر بازرگم تا ازش کمک بخوام. شاه لباس تور آورد و عروس اونارو رو پوشید. سر صورتش رو هم پوشوند و سوار کالسکه شدند و رفتم به طرف قصر. دختره دوباره رفت کنار بخاری و گفت پدر بزرگ کیه که داره من رو صدا میکنه؟ منم پدر بزرگ چی میخوای زشت ریشو؟ پدر بزرگ شما باید به من کمک کنیم من به خاطر شما محکوم به مرگ شدم به خاطر من؟ مگه بهت نگفته بودم که همه چیز رو باید ببری بیرون و چیزی رو فراموش نکنی؟ اگه گردم بند تلا رو جا نمیذاشتی؟ تلسم من میشکست. به خاطر تو محکومیت من دوباره از اول شروع شده. دختره گفت: پدربزرگ، من اون زیبایی رو که تو این قصبه دست آوردم دیگه نمیخوام. اما حداقل همون چهره‌ای رو که از اول داشتمو میخوام. بهم رحم کن پدربزرگ. منو به همون صورتی که قبلا بودم در بیار. پدر بزرگی گفت: باشه، چیزی که جا نزاشتی. دختره گفت: نه نه گردن بند رو هم که به میخواویزون کرده بودم برداشتم پدر دوباره گفت بندازش گردنت که زیبا بودی و زیباتر میشی دختره گردن بند رو انداخت توی گردنش همون موقع ریشش یهو ها شد از پدر تشکر کرد و خداحافظی کردن و از قصر مدن بیرون داماد با دیدن عروس که زیباتر از گذشته شده بود با خوشحالی بغلش کرد و بهش گفت حالا پدرم دیگه تو رو محکوم به مرگ نمیکنه و حتی نمیگه که عروسی با تو آبروی تاج و تختمون رو میبره خلاصه عروس و داماد به قصر پادشاهی رسیدن پسر عروسش رو به پدرش نشون داد پادشاه پیرم گفت وای پسرم تو حق داری زیباتر از این عروس وجود نداره. بعد از اون پادشاه دستور جشن عروسی داد و درزم خواست که دختره بره جلوی پنجره تا همه مردم بتونن رو ببیننش. بلا فاصله همه مردم زیر پنجره جمع شدن و وقتی دختر جوونی به این قشنگی رو دیدن همه با هم فریاد کشیدن زنده باد. زنده باد ملکه. و بعد از چند روز مراسم عروسی مفصلی برای شاهزاده و دختر زیبا رو برگزار کردن سفر به دنیای پر رمز و راز افسانهها، ها طبیعت های زیبا و نایاب رودخانه ها و برکه های جادویی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 قصه های دیو و غول و پری رشادت های قهرمان های ها همه و همه و همه در کانال ترگرامیه هزار افسان داستان های افسانه ای صوتی مهران دوستی